تاویج 1052 در همین گفته شنود شاهزاده احمد به مسافرخانه وارد شد و همه برادران یکدیگر را در آغوش گرفتند شاهزاده حسین که از همه برادرها بزرگتر بود پیشنهاد کرد که توفه های سفر را با یکدیگر مورد سنجش قرار دهند و بین خودشان تشخیص دهند کدام یک از همه بیمانند تر است آنگاه درباره اهمیت قدیچی که با خود از شهر بایسونگور آورده بود توضیحات مفصلی داد و گفت ما این قالیچه که در یک چشم هم زدن به هر نقطه گیتی پرواز کند کدام توفه کم یا به دیگری می تواند دارای چنین اهمیت و خاصیتی باشد؟ شاهزاده علی بعد از سخنان برادرش گفت من هم تردیدی ندارم که این قالیچه دارای خاصیت بی‌مانندی است بدین معنا که با هیچ وسیله دیگری امکان ندارد بتوان در یک لحظه به هر کجای دنیا پرواز کرد اما من هم جام جهان نما دارم که در نوع خود بی و دارای اهمیت فوقالعاده است و در این جام تنها دستگاهی است که شما هر کجای جهان را با آن می ببینید و از حال و وضع دیگران از فاصله دور آگاه شوید شاستاد حسین که برای دیدار نور و نهار بیقرار شده بود جام جهان نما را از دست برادر گرفت و به اتفاق دو برادر خود آینه را نگاه کردند و نور و نهار را دیدند که چهرش بیرنگ و خودش رنجور و بیمارگونه است حالت تحصول بار نور و نهار سبب ناراحتی و شگفتی هرس برادر شد زیرا دقت بیشتر متوجه شدند که او درون بستری دراز کشیده و ندیمه دور او حلقه زدهاند و همه گریه خونان انتظار و زندگی نور و نهار را دارند هسته برادر از دیدن چنان دلخراشی به بگری افتادند هنگامی که شاستاد حسین مشوق نازنین خود را در چنان مرحله خطرناکی دید به برادران خود گفت متاسفانه نور و نهار به پایان زندگیش نزدیک شده است و یا شتابان خدا بر بالین او نرسانیم و به داد او نرسیم جان خود را از دست خواهد داد شاستاد حسین فورا قادی را روی زمین گسترد و گفت ما هر سه می توانیم روی آن بنشینیم و پرواز کنیم و همین که هر سه روی آن جای گرفتند قایلیچه به پرواز درآمد و در لحظه بعد در اتاق شاهزاده نورانهار به زمین نشست بانوانی که دور بستر شاهزاده نورانهار بودند از ورود ناگهانی سه شاهزاده یکی خوردند و حیرت کردند و از خود می اینها به کمک چه سه و جادویی با این سرعت خود را به قصد رساندند شاهزاده احمد بدون لحظه درنگ سیب شفابخش را به نزد شاهزاده خانم برد و از او خواست آن را ببوید نور نهار هم بدون معطلی سیب را بویید و در همان لحظه چشمایی خود را گسود و در بستر نشست و از ندیمه هایش خواست تا لباس او را در اختیارش بگذارند. درست مانند آنکه آدم سالمی از خواب خوشی بیدار شده باشد ندیمههای های نهار با خشنودی بسیار لباسهای او را آوردند و به او پوشندند آنگاه نور و نهار که لبخند شیرینی بر لب داشت از پسر اماهای خود سفاس گذاری کرد مقصد از شاهزاده احمد که در واقع آورنده داروی شفا به شمار میآمد. شاهزادگان مراتب خشنودی بی خود را از بهبودی سریع نور و نهار ابراز کردند و گفتند وقتی از بیماری او آگاه شدند صمیمانه برای تندرستی و بهبودی او دعا کردند و چه زودتر خود را به او رساندند تا داروی شفابخش را در اختیار او بگذارند در این موقع که نهار از برخواستن از بستر و تغییر لباس خود را داشت پسرعموهایش او را به حال خود گذاشتند و از اتاق بیرون رفتند در مدتی که نهار مشغول لباس پوشیدن بود سه شاهزاده به حضور شاه رفتند و زانو زدند و دست او را بوسیدند و از دیدار دوباره شاه ابراز خوشنودی کردند چهه فرزندان خود را در آغوش کشید و خوشحالی خود را از بازگشت آنها ابراز کرد و در حالی که لبخند میزد از آنها تشکر میکرد که با داروی شفابخش خود بیماری نور و نهار را که پزشکان از او معیوس شده بودند فوراً درمان کردند و آنان به خودی کامل بخشیدند هر کدام از ها تفیه سودمند بیمانند خود را به حضور پادشاه تسلیم کردند و هر کدام سخنانی چند درباره خاصی و مضیعت آن بیان کردند وست درخواستند تا نور و نهار را به همسری او درآورد، زیرا هر کدام صادقانه معتقد بودند که تحفیه او بهترین و سبب بهبودی و بازگشت سلامت نور و نهار است. سرطان با حسل و دقت به سخنان هر یک از فرزندان گوش کرد تا آنکه سخنان هر سه آنها پایان پذیرفت. سلطان مدتی فکر کرد و بعد از آن چنین گفت فرزندانی گرامی من من از حسین شما ممنونم زیرا نتیجه اقدامات سه نفری شما جان نور و نهار را از مرده بخشید درست, درست که به شفابخش شاهزاده احمد رفع بیماری و بازگشت تندرستی نور و نهار است ولی چنانچه جام جهان نما در اختیار نبود شما از بر بیماری دختر عمویتان آگاه نیشدید و هر آینه بعد از آگاهی وسیله سریع مسافرت چون قادشه پرنده را در اختیار می داشتید، به سرعت و به موقع نمی در اینجا حاضر شوید و نور و نهار را از مرگ نجات دهید. بنابراین، هر کدام از شما سه نفر صحب مساوی در بهبرد نور و نهار داشته اید که مجموع آنها مؤثر در رهایی او از مرگ حتمی بوده است و در نتیجه هیچ کدام را بر دیگری نمی توان داد تا بگوییم او بهترین جفته را فراهم ساخته، و شایسته همسری دختر را به دست آورده است به عبارت ساده هیچکدام هیچ از این توفه به تنهایی کارساز نبوده است و این توفه ها به طور مجموع موثر واقع گردید است در این هنگام شاه اظهار داشت از راه دیگر باید بهترین شماها را برای همسری نور و نهار برگزید و من فکر آن را کرده ام هم. همکنون همه شماها تیر و کمان خود را اینجا بیاورید تا به صحرا را در صحرا هر از شما تیری از کمان دها سازید آن وقت مسافتی را که هر کدام از پیکان‌ها پیمودند اندازه می‌گیریم و کسی که توانسته باشد پیکان خود را به دورترین نقطه فرستاده باشد شایسته همسری نور و نهار شناخته خواهد شد من بازم از صفه های شما ها تضاهر می‌کنم و با وجودی که های بسیاری در خزانه خود دارم ولی اعتراف می‌کنم که هیچ کدامشان به خوبی و کمیابی هر کدام از طافه های شما ها نمی رسد. این طافه ها را در خزانه پادشاهی جای می دهم تا از هر کدام به موقع خود استفاده کنم هر سه با پیشنهاد پادشاه موافقت کردند و از حضور او مرخص شدند و, و کمان خود را برداشتند و از افسر مربوطه خواستند تا آن را به میدانی که در درگه به خصوصی قرار داشت بیاورد روه بسیاری از اهالی هم به عنوان گواه در آن جلگه اجتماع کردند و مشتاقانه در انتظار مسابقهٔ تیراندازی شاهزادگان به تماشای ایستادند پادشاه هم فورا خود را به همان جلگه و منطقه رساند و شاهزاده حسین فرزند بزرگتر شاه به محض ورود شاه به جایگاه تیر و کمان خود را از اثر سرطنتی گرفت و نخستین نفر بود که تیر را از کمان رها کرد بعد از او شاهزاده علی تیر خود را رها ساخت که تیر مسافت بسیار دورتری از پیکان برادر بر زمین نشست سومین تیرانداز شاهزاده احمد یعنی کوچکترین برادر بود که به نوبه خود پیکانی درآورد و آن را به ذهر کرد و کشید و پیکان هوا را شکافت و از نظر ناپدید شد و آنقدر دور رفت که نتوانستند آن را پیدا کنند با وجودی که همه اصلاف نزدیک و دست دور را هم رسته دو کردند سرانجام اثری از پیکان شاهزاده نیافتند و با وجودی که همه و حتی سلطان قبول داشتند که پیکان او از دو پیکان دیگر به مراتب مسافت زیادتری را پیموده است اما چون آن را نیافتهاند دلیلی بر اثبات این مطلب در دست ندارند و به همین جهت شاهزاده علی را برنده مسابقه و شایسته همسری نور و نهار شناختند اعتراضات شاهزاده احمد به جایی نرسید و او از این جهت ناخشنود و دلشکسته شد پادشاه فرمان داد تا مقدمات برگزاری جشن عروسی را تدارک کنند و چند روز بعد هم جشن بسیار شکوهمندی برگزار گردید شاهزاده حسین که این زن وشویی را به رسمیت نمیشناخت در جشن حضور نیافت زیرا معتقد بود که علی به قدر او شایستگی همسری نور و نهار را ندارد و میزان عشق و هم واقعیت عشق او را نسبت به و نهار ندارد مای ترتیب حق وراثت خود نسبت به سلطنت و تاج تخت را رسما از خود سلب کرد و از شاه بیرون رفت و درویش شد و در حلقه مریدان یکی از مرشدهای بزرگ در دراویش درآمد که پیروان بیشماری داشت. شاهزاده احمد هم در جشن زناشویی علی بانو را نهار شرکت نکرد اما مانند حسین تاری که دنیا نگردید و همه فکر بود که تیری که او از کمان خودها ساخته بود به کجا رفته زیر نیروی آدمی حق از زیاد هم که باشد نمیتواند آن را به چنان مسافت دوری پرواز دهد با این فکر از همراهان خود جدا شد و در دستجوی پیکان ناپیدا همچنان راه می پیمود تقریبا چهار فرسنگ از محل مسابقه تیراندازی پیموده بود که ناگهان چشمش به پیکان گم شده افتاد وقتی شاهزاده احمد پیکان را از زمین برداشت آن را به دقت معاینه کرد مطمئن شد همان پیکانی است که او از کمان خود رها کرده بود ولی در حیرت بود که چگونه این پیکان توانسته این مسافت را طی کند بعد از مدتی فکر کردن به این نتیجه رسید که باید راز رمزی در کار باشد زیرا چنین عملی از قدرت آدمی خارج است دوباره با خود گفت شاید سرنوشت سلاح مرا در این دیده است که من به آنچه که فکر میکرده ام بهترین است دست نیابم و گم شدن پیکان به نفع من بوده است شهستاد احمد وارد قاری در همان حوالی شد قاری عمیق بود بعد از مدتی که به اطراف نگاه کرد دری آخرین توجه او را به خود جلب کرد دلو رفت و با دست آن را فشار داد گشوده شد و زمین با شیب ملایمی ادامه یافت شهستاد احمد هم پیکان در دست حرکت میکرد بعد از پنج و قدم به فضای روشنی رسید که قصر مجللی را در برابر خود نمایان دید و بانوی جوان بسیار زیبایی هم با لباس بسیار گرانقیمت و زربفت در زین ایوان قصر ایستاده و چندین ندیمه زیبا هم در اطراف او ایستاده بودند احمد نمیتوانست این بانوی باوقار را بشناسد به محض اینکه احمد چشمش به این بانوی زیبا افتاد با شتاب جلو رفت تا از ادب و تعارف کنند: اما این بانو خودش جلو آمد و گفت شاهزاده احمد خوش آمدید خوشآمدید بفرمایید نزدیکتر از اینکه بانوی ناشناس او را شناخته بود در حیرت عمیقی فرو رفت و از خود میپرسید در این مکان که نخستین بار است آن را بینم چگونه این بانو مرا میشناسد آنگاه شاهزاده احمد به نشانی احترام و قدرشناسی در برابر این بانو زانو زد و دوباره برخواست و گفت: « از اینکه مرا مورد محبت قرار می دهید و خوش آمد میگویید ممنونم و مذرت میخواهم که در اثر کنجکاوی در حریم شما قدم گذاشتم. اما نیت بدی نداشتم، و از اینکه شما را نمی شناسم معذرت میخوام بانی جوان پاسخ داد بهتر است به درون قصد برویم و در آنجا ب دیگر صحبت کنیم. بعد از این سخنان بانانی زیبا شاهزاد احمد را به درون قصر هدایت کرد ساختمان بسیار مجلل و ای بود که تمامی گنبد آن از طلا و فیروزه ساخته شده و اساسیه و لوازم موجود در این قصر همه بینظیر و ارزش آن قابل تصور بود و چیز به قدری برای شاهزاد احمد تازگی داشت که مانند آن را نه در کاخ سلطنتی پدر و نه در هیچ کجای دیگر دیده بود به اندازه شگفت زده شده بود که بی احسیار شگفتی خود را ابراز کرد. بانون زیبا گفت اگر شما تمام تالارهای کاخ را ببینید با شگفتی بیشتری رو برو خواهید شد. پس به سخنان خود ادامه داد و گفت میدانم که خیلی مایلید مرا بشناسید و از این با بی در انتظار هستید. همانطور که میدانید در این جهان هستید آدمی تنها آفریده خداوند نیست. بلکه در کنار آن هم مودودات دیگری به نام جن زندگی می‌کنند. و از لحاظ عقاید مذهبی جن و انس هر دو در کتاب ذکر شدهاند من دختر یکی از مقتدرترین بزرگان اجنه هستم که مرا پریبانو مینامند بنابراین تعجب نکنید که من نام شما را میدانم سلطان پدر شما و دو شاهزاده دیگر برادران شما و شاهزاده خانم نورو نها را میشناسم و سرگذشت شما و سفر دفتر شما شاهزادگان به خاطر فراهم کردن بهترین تخفه و اثبات شایستگیتان برای زنشویی با دختر عمویتان آگاهی کامل دارم و این من بودم که هنگام مسابقه تیراندازی پیکان رها شما را در فضا گرفتم و در مسافت بسیار دوری بردم و بر زمین نشاندم تا شما برنده شوید و این کمک را به شما کردم چون که عاشق شما بودم و من ترتیب خالیشه پرنده و جام جهان و سید شفا را دادم تا به دست هر کدام از شماها برسد و با موفقیت به نزد پدر برگردید اما شما شایستگی بیشتری برای خوشبخته شدن داشتید من پیکان شما را در فضا گرفتم و در نزدیکی که خود روی زمین نشاندم تا شما در جستجوی آن به این کاخ قدم گذارید و خوشبختی خودا که مراتب آریتر از ننشوی با نوران است. در این کاخ به دست آورید و این خوشحالم خوشحادم که شما را در کنار خود و در این کاخ می بینم همین که پریبانو قسمت آخر سخنان را ادا کرد گونه های او از شرم سخ شد و لحن صدای او حالت دیگری به خود گرفت شاهزاده باورش نمی که چنین خوشبختی بزرگی بر او روی آور شده باشد زیرا وقتی شاهزاده نورانه ها را با پریبانو مقایسه می کرد می دید پریبانو از لحاظ زیبایی، زیب و فهم و ثروت به مراتب آدی تر از نور و نهار است به علاوه نور و نهار دیگر نمی همسر او باشد شاهزاده احمد خدا را شوکرسی در جستجوی پیغان خود شش فرسنگ راه آمده و این سرنوشت بوده که او را به سوی خوشبختی می برده. آنگاه آنگاه به پریبانو گفت ای بانوی من من خوشحاله که خدا خدمت بزار شما بدانم و خوشبختی خدا در تمام عم در کنار شما جستجو کنم شما میتوانید مرا به غلامی خود بپذیرید و این افتخاری است که نصیب من میکنید پریبانو گفت ای شاه زاده مدتهاست که من زندگی مستقیلی دارم و به, وسته به پدر و مادر خود نیستم و من شما را به عنوان همسر و سرور خود در دربار خود میپذیرم تمام زندگی و کاخ و اساسیه و ندیمه ها و غلامان و املاک و همه متعلق به من است و بعد از زناشویی متعلق به شما خواهد شد و شما باید وفاداری خود و زندگی مبتنی بر عشق و علاقه خود را همواره نسبت به من رعایت کنید. من سمیمانه شما را دوست دارم و به همین جهت شما را به همسری ام هم و متقابلاً انتظار دارم شما هم با همین احساس همسر من شوید. از همین لحظه من و شما زن و شوهر هستیم و بدون تشریفات پیوند بستیم در حالی که آدمیان با آن تشریفات و سر و صدا ازدواج پایداری ندارند سپس پریبانو خطاب به شاهزاده اظهار داشت میدانم گرسنه هستی زیرا از صبح تا این لحظه غذا نخوردهای شام شب عروسی آماده است و میتوانیم در کنار یکدیگر بر سر سفره بنشینیم بعد از شام تالارهای کاخ را به شما نشان خواهم داد دو از از ها آن دو را به شام دعوت کردند و غذاهای خوشمزه و عالی و شراب گوارا در سفره آماده بود بعد از نوشیدن شراب به مقدار دلخوا و سفر شام تریبانو شاهزاده را در تمام تالارها بگردش در آورد و الماس ها و یاقوت ها و زمرد ها و اقسام گوناگون جواهرات گرانبها که با مرواری و عقیق و انواع سنگ های قیمتی دیگر همراه بود به شاهزاده نشان داد اساسیه و لوازم زندگی موجود در تالارهای کاخ به بمقسی شاهانه و شکوهمند و قیمتی بود که شاهزاده نظر آن را در هیچ کجای دنیا ندیده بود و نمی‌توانست قیمتی برای آن تعیین کند در این هنگام پریبانو گفت شاهزاده کاخ رئیس ما به مراتب بزرگتر و با شکوتر از این کاخ است و دارم که باهای این کاخ را به تو نشان دهم ولی چون دیر وقته است ما کول به زمان دیگری می‌کنیم دومین تالاری که پریبانو شاهزاده را به آنجا راهنمایی کرد تالار رختها و پوشاک بود که به نظر شاهزاده بسیار جالب و دیدنی آمد در این تالار شمدانهای چند که از سقب آویزان بودند و انواع شمعهای بزرگ گچی و کافوری در های دیواری و دیوار های طلا با زیورالات ظریف دیده میشدند که هنگام روشن بودن عطر انبر و بوهای خوش دیگر از آن منتشر میشد و فضا را خوشبو میکرد قفصه ظروف چینی و کریستال که بهترین سری زرفای آب تلایی و نقره به تعداد بسیار زیاد در آن ردیف شده بود نظر شانستاته را به خود جلب میکرد در همین تالار گروه نوازندگان و خانندگان زن با سازهای موسیقی خود روی صندلی ها جای گرفتند لباسهای زیبا و جواه نشان آنها و نواهای دلنشین و خیالانگیزی که می نواختند و می به مراتب لطیفتر و گوشتنواستر از بزم آدمیان بود صفره رنگینی همراه با بهزنین شراب ها در این تالار گسترده بود و دوباره پریبانو شاهزاده را دعوت به خوردن و نوشیدن کرد شاهزاده احساس می کرد که تن و اچه غذاها و چاشنی آن و نیز مزه و مصیح شراب پریبانو با آن که در کاخ سلطنتی پدر و یا سایر نقاط جهان خورده و نوشیده است فرق بسیار دارد در این هنگام دو همسر جدید روی زمین بر تشک نرم و راحت نشستند و بر های زیبا که با پر او انباشته و روکش آن با نقش گلهای طلایی زینت یافته و از افریشم خالص بود تکیه زدند و های پریزاد و آدنیزاد در برابر آن را به رقص و پایکوبی پرداختند آهنگ آواز در سراسر تالار به گوش میرسید و شاهساده در کنار پریبانو و این صحنه آشقانه از خود بیخود شده بود در مقابل آنها خوابگاه عروس و داماد خود نمایی میکرد وقتی آن دو از جای خود برخاستند تا به خوابگاه بروند و ها در دو صف ایستادند و آنها از میان آنها گذشتند و وارد خوابگاه شدند بعد از آن نوازندگان و خانندگان هم تالار را ترک کردند جشن سرور زناشویی چنده چبان روز ادامه داشت و همان زیافت و ساز آواز خوردن و نوشیدن و پایکوبی و ساز آواز دنبال می به طوری که پیشبینی چنین جشن شاهانه و مجللی برای شخصات قابل تصور هم نبود منظور پریبانو از این همه پذیرایی و تشریفات این بود که به شخصات بفهماند چه عشق واقعی و سمیمانهی نسبت به او در رو دارد و ضمناً با سرگرم کردن او نبذارد به خاطر از دست دادن نور و نهار اندوخگین باشد و در عین حال مهر خود را آنچنان در دل شاهزاده جای دهد که حواس بازگشت به دربار و کاخ سلطنتی پدرش را در ذهن خود راه ندهد و در نزد پریبانو باقی بماند و زندگی سعودتمندانه ای را در جوار یکدیگر دنبال کنند شش ماه از تاریخ عروسی شاهزاده با پریبانو میگذشت و در این مدت شاهزاده کمترین خبری از پدرش نداشت و دلش سخت هوای دیدن پدر را کرده بود و برای تسکین این دلتنگی رافی جز دیدن پدر نبود که آن هم مستلزم دوری از همسر خود و غیبت از خانواده بود بنابراین از پریبانو خواست تا با رفتن او به قصد دیدار پادشاه موافقت کند پریبانو که با شنیدن درخواست شاهزاده تصور میکرد او دیدن پدر را بهانه کرده تا برای همیشه نزد او برود، بسیار ناراحت شد و گفت: چه بیمهری از سوی من دیده ای که به فکر رفتن از خانه و همسر خود افتاده ای آیا فراموش کرده که روز اول پیمان وفاداری و دلدادهی با من بستی؟ اینک چه شده است که دل از مهر من برگرفتی و قصد پیمان شکنی داری، در حالی که من آشغانه تو را میپرستم شاهزاده پاسخ داد: ای من، من تردیدی ندارم که تو مرا دوست داری اگر جز این تصور کنم خود را شایسته ی عشق تو نمیدانم و ناسپاسی و کرده عشق من تو متقابل است اگر درخواست من تو را ناراحت کرده اوز میخواهم مرا ببخش من فقط میخواستم پدرم را ببینم زیرا شش ماه بیخبری از او او را سخت نگران میکند و ممکن است تصور کند من مرده با وجود این هر طور که تو بگویی همان خواهم کرد پریبانو از سخنان شاهزاده خوشنود شد و فهمید او هم واقعا او را دوست دارد و به پیمان خود پایبند باشد و انگیزه او فقط دیدار پادشاه است شاهزاده هم گاه و بیگاه به پریبان یادآور میشد که پدرش دلبستگی بسیار به او دارد و دوری او از پدرش سبب قصه پدر خواهد بود شاهزاده احمد با گفتن اینگونه مطالب درباره دلبستگی پدرش به او هدفش این بود که پریبانو را بر سر رحم آورد و احساسات عاطفی او را برانگیزد. خصوصاً که می‌گفت در شب عروسی برادرش شاهزاده علی، او و شاهزاده حسین هم حضور نداشتن و بعد از آن شاهزاده حسین رو به درویشی و ترک دنیا آورده و این امر هم بیش از اندازه پدر پیر را آزرده خاطر ساخته است. معمولا یک پدر هنگامی احساس خوشبختی در زندگی می‌کند. که فرزندانش در کنارش باشند بیبی جان که فرزندان ای هم باشند و هراین شاهزاده حسین و شاهزاده احمد در میان خانواده سلطنتی و در کنار پدر خود به سر می بردند پادشاه احساس رضایت و آرامش و بیشتر می کرد در این شرایط که شاه از شاهزاده احمد خبری نداشت و فرستادگان مأمورین درباری او هم با همه یک کوشش و کاوش خود در سراسر سر کشور شاهزاده احمد را نیافته بودند، ناخشنود و جو صبر و چاره ای نداشت. پادشاه بارها از نخست وزیر خواسته بود که در پیدا کردن شاهزاده احمد به او یاری دهد و او هم هر کاری از دستش ساخته بود انجام داده بود، ولی به نتیجه مورد انتظار نرسیده بودند. نخواست وزیر که آرامش خاطر سلطان و آسایش و رعیت را میخواست پیرزن جادوگری می‌شناختی در علم سحر و جادو سرامت زمان خود بود و کارهای یا شگفت انگیز بسیاری انجام داده بود. نخست وزیر مأموری به دنبال پیرزن فرستاد و او را به حضور سلطان آوردند سلطان به پیرزن گفت: همه میدانند که در شب عروسی ازدواج شاهزاده علی با نور نهار دختر عویش شاهزاده احمد حضور نداشت و آن شب تا این لحه کمترین خبری از او نداریم میخواهم تو با ام و مهارت خود در رشته سحر و جادو به من بگویی آیا او زنده است؟ و اگر پاسخ من مثبت است، در کجا زندگی کند؟ به چه کاری اشتغال دارد؟ و اینکه آیا من می توانم امیدوار به دیدن او باشم؟ جادوگر پاسخ تو از سلطان به سلامت باد. پاسخ شما را نمیتوانم فوراً بدهم. لطفاً تا فردا به من فرصت دهید تا با مراجعه به ها و وسایل مخصوص خود پاسخ کافی به حضورتان تقدیم کنم. سلطان هم موافقت کرد. روز بعد جادوگر به حضور سلطان باریا، نخست وزیر برای بار دوم او را به حضور آورد و جادوگر به ارش سلطان نتیجه بررسی هایم به اینجا رسید تا فهمیدم که شاهزاده احمد زنده است اما نتوانستم محل اقامت و سرگرمی شاهزاده را بفهمم. زنده بودن شاهزاده سبب خوشنودی سلطان شد اما نمیدانست فرزندش به چه سرنوشتی گرفتار شده است و در چه شرایطی زندگی می‌گذراند اما شاهزاده احمد در هر فرصت مناسبی درباره سلطان صحبت می‌کرد ولی درباره یه رفتن خود برای دیدن سلطان اشاره‌ای نمی‌کرد و آنقدر این شیوه را دنبال کرد تا آنکه پریبان و متوجه منظور او گردید و حس کرد که شاهزاده از ابراز علاقه برای دیدن به در خود داری می‌کند تا پریبانو ناراحت نشود پریبانو که به محبت و وفاداری و سمیمیت شاهزاده نسبت به خود اطمینان حاصل کرده بود و دلایل بسیاری برای عشق او نسبت به خود در دست داشت به این نتیجه رسید که انصاف نیست بین پدر و پسر فاصله اندازد و برای آنکه وجدانش راحت شود حاضر گردید به شاهزاده اجازه دهد به دیدن پدر خود برود روزی شاهزاده را صدا زد و گفت علت مخالفت من با رفتار تو نزد پدرت این بود که میترسیدم بروی و دیگر برنگردی اما رفتار و تو مرا به این صمیمیت وادار کرده و یقین دارم که مرا دوست داری و اینک حاضرم به دیدن پدرت بروی ولی اول باید سوگند یاد کنی که زود برمیگردی و مرا زیاد در انتظار خود نمیگذاری و این شرط من به خاطر بی‌اعتمادی به تو نیست بلکه برای دلبستگی شدیدی است که به تو دارم شاهزاده احمد میخواست خود را به پای پریبانو بیاندازد اما او نگذاشت شاهزاده گفت نمیدانم با چه زبانی از تو سپاسگزاری کنم من قول میدهم که همیشه با تو زندگی کنم تو را انقدر دوست دارم که زندگی بی وجود تو برای مفهومی ندارد و سعی میخونم هرچه زودتر نزد تو برگردم پریبانو از سخنان شاهزاده شاد شد و گفت هر زمان که آماده ای میتوانی بروی ولی متوجه باش به پدرت نگویی با من ازدواج کردی و در کجا زندگی میکنی فقط به او بگو از زندگی و روزگار راضی هستی و آمده ای او را از سلامتی و وضع خود آگاه کنی. پریبانو بیست مرد نجیب زاده را با های مرتب و گرم قیمت و تجهیزات کامل سوار بر از همراه شاهزاده کرد و شاهزاده قبل از رفتن دوباره سوگند یاد کرد زود برخواهد گشت و بعد با بوسیدن پریبانو از او خداحافظی کرد و در کمال وقار و زندگی سوار بر اسب بسیار زیبایی شد که نظیر آن را سلطان هم در استبل خود نداشت و راه سپار سفر خود گشت چون تا قصر سلطان فاصله نبود به زودی به قصر رسید مردم از شادی فریاد و هلهله کردند و دنبال او روان بودند توسان از دیدن فرزند بی نهایت خوشحال شد و او را در آغوش گرفت و بوسه های پیدر پی کرد و از اینکه که دست سرنوشت نور و نهار را قسمت علی کرده بود اظهار تحصف کرد شاهزاده پاسخ داد ای پدر ابدن احساس ناراحتی نکنید اگر من در جشن عروسی حاضر نشدم واقعا نمی‌خواستم زیرا من عاشق نور و نهار بودم و اگر شرکت می‌کردم. مردم و حتی خود شما چه می آشق واقعی نمی تواند مشوق خود را در آغوش دیگه